فصل سیزده هم که گرفتار دردهای دوران پیری بود فرصت کمی در اختیار داشت تا به تعلیمات دینی خوزارکادی چهار برسد آنها در نظر داشتند او را به مدرسه علوم دینی بفرستند و برای آماده کردن او باید عجله می کردند از سوی دیگر خواهرش ممه که اوقات خود را میان مقررات سفت و سخت فرناندا و طرح کامیهای آمارانتا تقسیم کرده بود همزمان به سنی رسیده بود که باید به صومعهی خواهران راهبه فرستاده میشد تا برای گروه کور کلیسا پیانو بیاموزد اورسلا به شیوههای خود در شکل دادن به روحیه چهار روم به عنوان پاپ آینده شک و تردید داشت و خود را سرزنش می کرد او این نقص را ناشی از عرهای تیروتار دوران پیری نمیدانست که او را از شناخت واقعیت اشیا باز داشته بود بلکه دلیل آن را گذر زمان در نظر می گرفت او میدید که گذر زمان و حقیقت زندگی را چگونه از دست می دهد می گفت این روزا و این سالا مسیر روزها و ساله قبل جلو نمیرند. با خود فکر میکرد که در گذشته لازم بود بچه ها روشت کنند و وارد جامعه شوند. تنها چیزی که یک نفر لازم داشت فرصت کافی برای یادگیری بود. زمانی که پسر بزرگش خوزارکادیوی دوم به همراه کولیها رفت و تمام اتفاقاتی که پیش از برگشتنش روی داده بود تا زمانی که با بدنی مانند یک افعه رنگارنگ برگشته و مثل ستاره شناسان حرف میزد مگر چقدر گذشته بود؟ رویدادهایی که برای امارانتا و خوزارکادیو پیش از آنکه زبان سرخ پوستی را فراموش کنند و زبان اسپانیایی یاد بگیرند پیش آمده بود یا مدتی را که خوزارکادیو و زیر درخت بلوط به سختی گذرنده بود؟ که حتی آنقدر فرصت نداشت تا در زمان زنده بودن بر مرگ خودش نوه سرایی کند یا زمانی که سرهنگ آرلیان و را در حال مرگ به خانه آوردند هنوز پنجاه سالش نشده بود که زجرهای زیادی در آن جنگ متحمل شد مگر اینها همه چقدر طول کشیده بود ارسولا در دورانی که مشغول ساختن آب نبات های به شکل حیوانات گوناگون بود، فرصت زیادی برای رسیدگی به بچه ها داشت. او با نگاه کردن به سفیدی چشم آنها می فهمید کدامشان به یک قاشق روغن کرچک نیاز دارد. حالا که این همه فرصت در اختیار داشت و کاری نداشت جز اینکه خزار خوزار کادی چهار روم را از صبح تا شب بر کول خود بگذارد و به او سواری بدهد، زمان او را مجبور کرده بود که همه کارها را نیمه تمام رها کند این یک حقیقت بود که ارسلا در مقابل پیری مقاومت می کرد و حساب سن و سال خود را از دست داده بود و روی هم رفته از هر لحاظ تبدیل به یک مزاحم شده بود به خصوص مواقعی که در همه کارها دخالت می کرد. به خیال خودش سعی می کرد همه چیز را روبه راه کند از هر یک از مهمانانشان میپرسید که تندیس گچی حضرت یوسف را او در دوران جنگ داخلی در این خانه به امانت گذاشته تا بعد از فصل بارندگی به سراغش بیاید؟ کسی درست نمیدانست او از چه زمانی بینایش را از دست داد حتی در سالهای پایانی عمرش که نمی از رخت خوابش بلند شود و به نظر می رسید که بلاخره مغلوب پیری شده باز هم کسی متوجه کوری تدریجی او نشد خود او پیش از تولد خزارکادی چهار متوجه نابینایش شده بود ابتدا تصور می کرد یک ناتوانی گذراست پنهانی از شربت مغز استخان استفاده می کرد و اصل روی چشمان خود می گذاشت. اما خیلی زود فهمید که به شکل غیر قابل برگشتی در تاریکی فرو می رود. تا جایی که اختراع برق را درک نکرد. به تدریج به مرحله‌ای رسید که حتی چراغ‌های برق را تشخیص نمیداد. وقتی بار اول به خانه برق کشیدند، او به زحمت توانست نور را تشخیص بدهد. این موضوع را به هیچ کس نگفت، چرا که می‌ترسید این عیب او بر سر زبانها بیفتد و دیگر همگی قیدش را بزنند. در سکوت سعی می کرد فاصله اشیاء و آدم را از شدت و ضعف صدای آنها آن هم از ورای آب مروارید چشمانش تشخیص بدهد. بعدها از حس بویاییش کمک گرفت که برای تشخیص اشیاء و اشخاص امکانی ناپیدا بود و حتی قانه کننده تر و قابل اعتماد تر از شبه مبهم و رنگ غیر قابل تشخیص اشیا بود پیبرد بورد که در نهایت این حس بویاییش است که او را از شرمندگی پذیرش شکست خلاص می کند. به این ترتیب می توانست در یک اتاق تاریک سوزن را نخ کند یا دکمه ای را بدوزد یا بفهمد که شیر بر روی اجاق کی جوش میآید. به طور دقیق می که هر کدام از اشیا در کجای خانه قرار دارند تا جایی که گاهی فراموش می‌کرد نابینا شده. روزی فرناندا دنبال حلقه ازدواجش می‌گشت و تمام خانه را زیر رو کرده اما نتوانسته بود آن را پیدا کند. اورسولا حلقه را روی قفسه‌ای در اتاق خواب بچه‌ها پیدا کرد. خیلی ساده در حالی که بقیه اعضای خانواده برای انجام کارهای روزمرهشان این طرف طرف می‌رفتند او برای اینکه سر راه آنها قرار نگیرد و قافل گیر نشود از هر چهار حس خود کمک می گرفت. پس از مدتی فهمید که همه آنها همان کارهای روز پیش را تکرار می کنند و از همان مسیرها عبور می کنند و تقریبا همان حرفهای روز پیش را میزنند. بنابراین، هر کدامشان که همان کار را برخلاف عادت قبلی در ساعت دیگری انجام میداد، احتمال داشت که چیزی را گم کند به همین دلیل بود که وقتی شنید فرناندا حلقه ازدواجش را گم کرده فهمید که تنها کار خارج از ای که او در آن روز انجام داده این بوده که به اتاق بچه ها رفته و ملافه های آنها را جمع کرده و برای پهند کردن به حیات برده چرا که ممه در شب قبل شپشی را روی آنها دیده بود ارسلا با مراجعه به ذهن خود فهمید که چون موقع جمع وری ملافه ها بچه ها دوروبر فرناندا می پلکیدند، پس به احتمال زیاد او حلقه ازدواجش را روی قفسه گذاشته تا دست بچه ها با آن نرسد. اما فرناندا برای پیدا کردن آن فقط مسیر هر روزه خود را می گشت و از این امر غافل بود که جست و جو برای یافتن اشیاء گم شده با روش های تکراری روزمره مقایرت دارد. و درست به همین دلیل پیدا کردن آنها مشکل می شود. رسیدگی به خز چهار چهارم و تربیت او این امکان را در اختیار ارسلا قرار می داد تا خود را حتی با کوچکترین تغییراتی که در خانه به وجود می آمد دهد. او وقتی فهمید که آمارانتا در اتاق خواب خود به تن تندیس قدیسین لباس می پوشاند برای اینکه به رنگ و نوع آنها پی ببرد وانمود میکرد که تفاوت رنگها را به بچه ها یاد میدهد و میپرسید خب بگو ببینم لباسی که ارخنگل رافائل پوشیده چه رنگیه؟ به این ترتیب بچه ها چیزی را در اختیارش میگذاشتند که چشمانش از اون دریغ میکردند با همین روش بود که خیلی جلوتر از زمانی که خوزارکالیا چهار روم به سن ورود به مدرسه علوم دینی برسد، از طریق دست زدن به نوع جنس پارچه لباسهای قدیسین میتوانست رنگ آنها را بگوید. اما گاهی اتفاقات غیر قابل پیش بینی رخ میداد و مشت او را پیش دیگران می کرد. یک روز که آمرانتا روی ایوان گلهای به نشسته بود و مشغول ملیل دوزی بود، اورسولا در حین حرکت به او برخورد کرد و کم مانده بود روی زمین بیفتد امارانتا که ناراحت شده بود با لحن اعتراض آمیزی گفت "هی، <تصفيق> مواظب باش چرا جلو پاتو نگاه نمیکنی اورسولا به اینکه به روی خودش بیاورد پیش دستی کرد و گفت تقصیر خودته چرا سر جای همیشگی رو خودت نمیشینی به حرفی که زد مطمئن بود در آن روز او چیزی را کشف کرد که دیگران متوجهش نبودند و آن این بود که با تغییر فصول زاویه تابش نور خورشید هم تغییر می کرد. بنابراین آنها برای دورماندن از تابش مستقیم نور آفتاب بدون اینکه که باشد جایی نشستنشان را به تدریج تغییر می دادند. از آن زمان به بعد تنها کافی بود که او روزها را در حافظش داشته باشد تا بتواند جای دقیق محل نشستن آمرانتا را تشخیص دهد لرزش دستانش واضحتر شده بود و پاهایش سنگینتر و كندتر شده بودند اما با این حال با هیکل کوچک خود کمتر توانست جای بند شود و تقریبا همان جنب و جوشی را داشت که موقع جوانی داشت همان روزهایی که تمام بار مسئولیت خانه بر روی دوش او بود برای نخستین بار حقایقی را به وضوح تشخیص میداد که زندگی پرمشغله سابق آنها را از او دریغ کرده بود. هنگامی که خوز آرکادیوی چهار 4 را برای فرستادن به مدرسه علوم دینی آماده میکردند، او این امکان را پیدا کرد که زندگی خود را از ابتدا به دقت مرور کند تا جایی که باورش نسبت به نسل بعد از خود به کل تغییر کرد. متوجه شده بود که برخلاف تصور قبلیش سرهنگ آرلیان و علاقه خود را نسبت به خانواده در اثر سختی جنگ از دست نداده بلکه او هیچ وقت هیچ کدام از آنها را دوست نداشته حتی همسرش رمدیوس را یا هر کدام از زنان یک شبه ای را که در مسیر حرکت جنگیش قرار گرفته بودند و نه حتی پسرانش را متوجه شد او آن همه جنگ را برای عقیده خود آنطور که عموم میپندارند انجام نداده و هرگز هم به خاطر خستگی از پیروزی در جنگ سرف نظر نکرده بلکه دلیل هر دوی اینها تنها غرور محض و غیر قابل بخشش او بوده. به این نتیجه رسید که سرهنگ آرلیان بو که او حاضر بود زمانی برایش حتی جانش را فدا کند است آری از و محبت، وقتی که او را حامله بود یک شب صدای گریش را شنید صدا چنان واضح و بلند بود که خوز ارکادی و را هم از خواب بیدار کرد و از شنیدن صدای او شادمان شد و گفت خیلی خوشحال است که میشنود پسرش حتی در شکم مادرش هم حرف میزند. هرکس هر کس که این موضوع را میشنید میگفت فرزندتان در آینده پیامبر خواهد شد اما ارسولا با شنیدن صدای گریه عمیق او از وحشت به خود لرزید و آن را نشانه از کودکی با دم خوک تلقی کرد که از آن واهمه داشت و از خداوند میخواست که بچهش مرده به دنیا بیاید اما حالا در دوران پیریش میدانست که گریه بچه ها در شکم مادرشان نشانه صداهای ماورای حیات و پیامبر شدن آنها نیست بلکه نشانه آشکاری است از نبود هرگونه مهر و عاطفه در او کوچک کردن تصویر پسرش باعث شد که یکباره باره آن احساس مهربانی را که به او بدهکار بود بیرون بریزد اما آمارانتا که سنگدلی باعث وحشت میشد و تلخیش حتی زندگی او را هم سختتر میکرد ناگهان از آخرین تجزیه و تحلیل او به عنوان زنی دل بیرون آمد به وضوح دید که زجر ناروایی را که او در حق پیترو کرسپی روا داشته به خاطر انتقام نبوده یا زای کردن عمر سرهنگ جرینلدو و مارکز از تلخی و ناشی نمیشده بلکه هر دوی اینها از مبارزی خونین میان یک عشق ابدی و یک ترس شکست ناپذیر درونی می آمده. همان ترسی که امرانتا همیشه در قلب زعج کشیده خود حس می کرد. و این ترس در نهایت پیروز شده بود در همین زمانها بود که اورسولا صحبت درباره باری ربکا را به میان کشید و یاد و خاطری او را با عشق و علاقی قدیمی که در اثر توبه و تأسف دیرهنگام بر آن افزوده شده بود و موجب تحسین ناگهانی او گردیده بود مطرح کرد او یادش آمد که ربکا تنها دختری بوده که به او شیر نداده و خون دو ناشناس در رگهایش جریان داشت که استخوانهایشان در گور صدا میداد ربكهایی که با قلبی بیقرار هر وقت در معرض ناملایمات قرار میگرفت به خاک باغچه و گچ دیوار پناه میبرد ربکایی که عشق آتشین و شجاعت لجام ای داشت که ارسلا همیشه برای فرزندان خود آرزو میکرد روزی در حالی که با دست کشیدن به دیوارهای خانه حرکت می کرد گفت ربکا ما رو ببخش چقدر در حق تو نادلانه رفتار کردیم؟ اعضای خانواده با دیدن ارسلا تصور می کردند او عقل خود را به تدریج از دست می دهد به خصوص از زمانی که موقع راه رفتن دست راست خود را مانند قدیس ارخانگل گابریل به هوا بلند می کرد. اما فرناندا متوجه شده بود در این سرگردانی های نوعی نور روشن زمیری نهفته است. فهمید که او نه تنها عقل خود را از دست نداده بلکه بر تیز هوشیش افزوده شده. اورسولا خیلی راحت می توانست پیش خود بسنجد که در طول سال خرج هزینه های خانه چه مقدار بوده است. تا هم همین عقید را نسبت به مادرش پیدا کرده بود. روزی وارد آشپزخانه شد و او را دید که کنار اجاق ایستاده و سوپ توی قابلمه را هم میزند و به اینکه متوجه حضور او بشود با خودش میگفت که آن آسیا به دستی مخصوص ذرت را که از اولین گروه کولی ها خریده بودند پیش از آن که خوزار دوم شست و پنج بار دور دنیا را بگردد به خانه پیلار برده شده و هنوز هم همونجاست پیلار ترنرایی که تقریباً صد ساله بود و برخلاف چاقی بیحدش که موجب وحشت بچه ها چالاکی خود را حفظ کرده بود درست همانطور که در جوانی صدای شلیک خندههایش موجب وحشت کبوترها و فراری دادن آنها میشد. امارانتا اماران از شنیدن حرف ارسلا تعجب نکرد او از روی تجربه فهمیده بود که هوش سنین پیری از کارت های فال ورق پیلارترنه را دقیق تر آینده نگری کند هنگامی که ارسولا یادش آمد فرصت نکرده خوزر کالیوی دوم را به خوبی تربیت کند دست خوش رنج های روحی شد و خودش را سرزنش کرد وقتی سعی می کرد را همون طور که از روی بصیرت و روشنی روان می بفهمد شروع به اشتباه می کرد. روزی شیشه پر از جوهر را به خیال اینکه شیشه گلاب است روی سر خزارکادیه چهار رم خالی کرد تنها به این دلیل که میخواست در همه امورات خانه دخالت مستقیم داشته باشد مرتب در تکاپو و رفت آمد بود و مدام به این طرف و طرف یا به اشجای خانه برخورد میکرد. و سعی می کرد خود را از سایههایی کمچون تار او را در خود گرفتار کرده بودند بیرون بکشد در این لحظه بود که فهمید بی دست و پا بودنش اولین پیروزی فرتوتی و سیاهی نیست بلکه به گذشته ها تعلق دارد و مربوط به گذر زمان است فکر کرد که در زمان های گذشته خداوند در سنجش سالما از دوز و کلک های, های عرب که موقع متر کردن و فروش پارچه هایشان به کار می بردند استفاده نمی کرده فکر کرد حالا نه تنها بچه‌ها زودتر رشد میکنند بلکه احساسات آنها نیز در مسیر دیگری تکامل می یابد هنوز از اوج روحانی رمدیوس خوشگله چیزی نگذشته بود که فرناندوی بی ملاحظه هر جا می رفت مرتب قرمی زد که چرا او ملافه هایش را با خود به آسمان برده از سوی دیگر هنوز جسد آرلیاناها در گورهایشان متلاشی نشده بود که آرلیان و سگوندو جشن و مهمانی ها را دوباره به راه انداخت و خانه را پر از مهمانان مست و غرق در شامپاین کرد و نواختن آکاردئون و رقص و پایکوبی را از سر گرفت انگار که چند قلاده سگ کشته شدند نه چند مسیحی مؤمن انگار آن دارالمجانینی که با هزاران آهناله و با فروش آبنبات های حیوانات ساخته شده بود یک زبالدانی بیشتر نبود چمدان چمیدان خوزارکادیه چهارم را برای رفتن به مدرسه علوم میبست و از خود میپرسید آیا بهتر نیست که حالا در گور خود دراز کشیده باشد و بگذارد اطرافیانش خاک روی تابوتش بریزند؟ به هیچ گونه ترس و واهمه ای از خداوند میپرسید مگر انسانها از فولاد ساخته شدند که باید این همه درد و بدبختی را تحمل کنند بارها و بارها از خدا تقاضای مرگ می کرد. گاهی هم به سرش می زد که مانند دیوانه به همه چیز ناسزا بگوید و برای لحظی هم که شده دست به تقیان بزند بارها این آرزو را کرد و بارها هم آن را به عقب انداخت در نهایت از کتاه آمدنهای همیشگیش دست کشید و بالاخره خشم خود را که مجبور بود سالها سرکوبش کند با صدای بلند بیرون ریخت و فریاد کشید ای کسافت امرانتا که در جمع و جور کردن و بستن وسایل به ارسلا کمک می کرد با شنیدن بد و او فکر کرد که اغرب دستش را گزیده و با عجله دستهای خود را عقب کشید و گفت کو؟ کجاست؟ و ارسلا جواب داد چی؟ امرانتا گفت اغرب و میگن ارسلا دست خود را رو روی قلبش گذاشت و گفت اینجاست. در ساعت دوی بعد از ظهر روز پنج شنبه خوزارکادیو چهار به قصد رفتن به مدرسه علوم دینی خانه را ترک کرد بعد از آن ارسلا برای همیشه او را در لحظه خداحافظیش به خاطر میآورد که چطور؟ با لحن جدی و مقمومی با او خداحافظی کرد آن هم بی اینکه حتی قطری عشک ریخته باشد درست همانطور که او را تربیت کرده بودند توی کت و شلوار مخمل راه راه و سبز رنگش که دکمه های مسی و یقیه بلند آهاردار داشت عرق می ریخت. پیش از خروج از سالن غذاخوری ارسلا مقداری گلاب به سر و روی او پاشید تا بتواند مسیر حرکتش را در خانه ردیابی کند سر میز نهار خداحافظی همه سعی می کردند غم دور شدن او را بروز ندهند با ظاهرسازی خود را شاد و خندان نشان می دادند و تعریف و توصیف پدر روحانی آنتونیو ایزابل را از مدرسه علوم دینی با خوشنودی و اغراق تأیید می کردند. اما وقتی که چمدان او را با روکش مخملی و سه قفل نقره ای از در بیرون می بردند، چونان ماتم گرفته بودند که انگار تابوتی را از خانه خارج می کند. در این میان، تنها کسی که از شرکت در نهار خداحافظی امتناع کرد، سرهنگ آرلیان و بو بود که با لحن مسخری گفت، تنها چیزی که کم داشتیم یه پاپ بود. سه ماه بعد، آرلیانو سگوندو و فرناندا دخترشان ممه را به مدرسه بردند و در راه بازگشت یک کلاوسن با خود به خانه آوردند که جای پیانو را گرفت در همین زمانها بود که آمارانتا شروع به دوختن کفن خود کرد تب موز فروکش کرده بود ساکنین قدیمی و اولیه ماکوندو خود را در محاصره خارجی های تازه وارد می دیدند و سخت تلاش می تا همچنان به منابع متزلزلشان وابسته بمانند و با این فکر دلخوش بودند که تا حالا توانستند خود را از بلایای گوناگونی نجات بدهند. بو ها کماکان از مهمانان خارجی پذیرایی می کردند تا زمانی که کارکنان شرکت موز شهر را ترک کردند و اوضاع خانه مثل قبل شد تغییرات عمده‌ای در آداب و سنت‌های پذیرایی و مهمن نوازی به وجود آمده بود چرا که در زمان فعلی این فرناندا بود که با سلیقه خود بر خانه حکومت می‌کرد اورسولا به گوش ایرانده شد و آمارانتا هم سرگرم دوختن کفن خودش بود در نتیجه این ملکه سابق بود که با آزادی کامل مهمانان را انتخاب و آداب خودش را که از پدر و مادرش به ارث برده بود پیاده می کرد. او با سخت های خود باعث برقراری سنت های قدیمی می شد. آن هم در شهری که به خاطر ورود آدم های پست دوچار تشنج بود و خارجی ها هم از این موقعیت سوء استفاده می کردند و به آسانی به منافع سرشار خود دست پیدا می کردند. از نظر او بی این که سوال اضافی پرسیده شود مناسب ترین آدمها آنهایی بودند که با شرکت موز سر نداشتند حتی برادر شوهرش خزار کادیو سگوندو هم قربانی عدم تبعیض آشکار او شد چرا که در اثر هیجانات روزهای نخست باز هم از خروسهای خود دست برداشت و به عنوان کارفرما در شرکت موز استخدام شد فرناندا با شنیدن این موضوع با عصبانیت گفت تا زمانی که اونم خودشو شریک چپوول های این شرکت کرده حق نداره پاشو تو این خونه بذاره به دلیل چون این سخت گیری هایی بود که آرمیان و دوباره به خانه معشوقش پتراکوتس کشیده شد و آرامش خود را در آنجا یافت. ابتدا با این عنوان که میخواهد از فشاری که روی دوش همسرش از کم کند جشن و مهمانی های خود را با آنجا منتقل کرد بعد با این بهانه که حیواناتش از باروری می افتند و استبل را با آنجا انتقال داد و در نهایت با این عنوان که خانه معشوقش خونک تر است دفتر کوچک خود را که در آن بعضی از معاملاتش را انجام میداد، با آنجا منتقل کرد فرناندا متوجه شد که پیش از آن که شوهرش بمیرد بیوه شده و برای بازگرداندن اوزا به وضع سابق خیلی دیر شده است. بدین طریق آرلیانو سگندو به ندرت برای صرف غذا به خانه می‌آمد. گاهی با این بهانه در خانه ظاهر میشد که میخواهد در کنار همسر خود بخوابد، اما دیگر کسی حرف او را باور نمیکرد. اوزا این چنین پیش میرفت؟ تا اینکه در اثر بیدقتی او فرناندا یک روز صبح سرزده وارد خانه پتراکوتس شد و شوهرش را در بستر او دید اما برخلاف انتظار داد و فریاد به راه نینداخت و جنجالی به پا نکرد حتی کوچکترین انزجاری از خود بروز نداد همان روز دو چمدان از لباسهای شوهرش را به خانه معشوقه او فرستاد این کار را نپنهانی که در روز روشن انجام داد تا مردم آنها را ببینند و باعث شرمساری شوهرش شود و او را وادارد تا با سرفکندگی به خانهش برگردد اما این اقدام گستاخانه او نتیجه عکس داد و مدرک دیگری شد بر این واقعیت که او نه تنها نتوانسته به خصوصیات اخلاقی شوهرش پی ببرد بلکه نمیداند در جای زندگی می کند که آداب و سنت های به مانده از پدر و مادرش هیچ اهمیتی برای آن جامعه ندارد هر کسی که چمدان‌ها را در خیابان می‌دید می‌گفت این کار نتیجه رفتارهای دیکتاتور معابانه اوست که در خانه شوهرش حاکم کرده طوری که همه مردم کم و بیش از آن باخبر خبر بودند و سگوندو این کار او را به فال نیک گرفت و به خاطر به دست آوردن آزادیش سه شبانه روز جشن گرفت در حالی که فرناندا در لباس‌های بلند و مدارهای افتخار دوران ملکه بودنش و در غرور خود که دیگر خریداری نداشت، خودش را مسنتر جلوه می‌داد، پتراکوتس روز به روز جوانتر می‌شد و در لباس‌های ابریشم طبیعی و با حقی که به دستش آورده بود، چشمانش از شادی برق می‌زد. آرلیانو سگوندو سگندو که گوی جوانی و شادابی خود را باز یافته بود خودش را به طور کامل در اختیار او گذاشت مانند زمانهای گذشته که پتراکوتس او را با برادر دوقلویش اشتباه می گرفت و بیان که بداند با هر دوی آنها می و از اینکه که خداوند مردی را در اختیارش قرار داده که دو نوع متفاوت از عشق بازی را انجام می دهد گذار بود و خودش را زنی خوشبخت میدانست. مهرم محبت بازیافته آن دو آنقدر شدید بود که حتی سر میز قضا چشم در چشم یکدیگر میدوختند و بی اختیار انگار که هیپنوتیزم شده‌اند بی اینکه کلامی بگویند به رخت خواب می‌خزیدند تا از عشق سیراب شوند. و سگوندو از دیدن دکراسیون اتاق خواب زن‌های فرانسوی تحت تأثیر قرار گرفت. و به تبعیت از آنها تخت خواب دو نفره مجللی را با کندکاری های زیبا برای اتاق خواب مشترکش با پترکوتس خرید و جلوی پنجره گذاشت. دیوارها را با پرده و دیوارکوب‌های مخملی پوشاند و سراسر سقف را با آینه‌های تراش خورده تزیین کرد. او نشان می‌داد که بیش از هر زمان دیگری دست به ولخرجی می‌زند. در هر قطاری که سر ساعت یازده پیش از ظهر میآمد آمد های شامپاین برایش می رسید موقع حمل آنها از ایستگاه قطار تا خانه پترکوتس هر کسی را که می دید از آشنای قریبه و از بومی و غیر بومی بی اینکه فرقی میانشان قائل شود همه را برای شرکت در جشن سرور به خانه دعوت می کرد حتی آقای براون که مرد محتاطی بود چند بار تحت تاثیر اقواهای آرلیانو سگوندو قرار گرفت او آنچنان مست میشد که هم نوا با آهنگ آکاردون آوازی را به زبان عجیب خودش زمزمه میکرد و سگهای شکاری آلمانیش را دیوانوار هر جا که می رفت با خود میکشید و آنها را به رقص وامی داشت آرلیانو سگوندو در اوج جشن فریاد کشید گاوا! <تصفيق> از هم جداشین که زندگی کوتاه او تا کنون آنقدر شاداب نبود و محبوب مردم قرار نگرفته بود. همچنین تا این اندازه زاد و ولد دامهایش چنین زیاد نشده بود. برای زیافتهایش انقدر گاو و خوک و مرغ بریده بود که حیات خانه با خون آنها خیس می‌شد و به سیاهی می‌زد. طوری که برای ابد محل دفن استخانها شده بود به حدی که ناگزیر بودند مرتب دینامیز کار بگذارند تا لاشخورها چشمان مهمانان را از کاسه در نیاورند به خاطر این زیاد روی ها و پرخوریها و خوشگزرانیها آرلیان و سگندو شد و رنگ صورتش کبود و هیکلش به لاک پشت شبی شد او را در پرخوری تنها میشد با پدر بزرگش خوزار دوم وقتی که از سفر دور دنیا برگشته بود محایسه کرد. آوازه پرخوری عجیب و غریب و ولخرجی های بیحد و حساب و مهمان نوازی های او از مرزهای اطراف طالاب فراتر رفت. در نتیجه خوشخوراکترین و پرخورترین افراد از همه جا به ماکندو سرازیر میشدند تا در مسابقه استقامت در پرخوری که در خانه پترکوتس برگزار می شد شرکت کنند. تمام این مسابقات با پیروزی آرلیانو سگوندو خاتمه میافت تا آنکه روز شنبه زنی به نام کامیلا ساگاستومه در خانه او ظاهر شد. کامیلا زنی چاق بود که در سراسر منطقه به ماده فیل مشهور بود. مسابقه میان آن دو از روز شنبه آغاز شد و تا صبح سه شنبه ادامه داشت. آرلیان سگندو خود را در 24 ساعت نخست برنده می دید چرا که غذاهایی چون خوراک گوشت گوساله، به همراه کرفس و سیب زمینی و موز سرخ شده خورده بود و یک کارتون و نیم شامپاین هم نوشیده بود. او خود را از هر جهت سرزنده تر و مشتاقتر از رقیب خود میدید. دید. کامیلا هم حالتی را داشت که آشکارانشان می داد هرفی تر است و برای جمعیتی که خانه را پر کرده بودند اهمیت چندانی قائل نبود آرلیان و سگندو که نگران پیروزیش بود لقمه های درشتی را برمی و گورت می داد اما مادفیل گوشت های پخته را مانند یک جراح با دقت و زرافت خاصی می و بی اینکه که عجلهی به خرج دهد با آرامش خاطر و با لذت خاصی آنها را می و می خورد. او زنی قول پیکر اما دارای ظرافت و لطافت زنانه بود. صورت زیبا و دستانی زریف داشت. چون شخصیت جذاب و گیرایی داشت که وقتی آرلیان و سگندو برای بار اول چشمش به او افتاد با صدای آهسته گفت که ترجیح می دهد به جای آنکه سر میز با او مسابقه بدهد در بستر این کار را بکند. اما وقتی دید او با آداب کامل نیمی از گوشت گاو درستهی را خورد با لحنی جدیتر گفت که این مادفیل ظریف و تحسین برانگیز در نوع خود زنی ایدئال است. او در این یک مورد اشتباه نکرده بود چرا که بر خلاف شایعات او یک مادفیل استخان خورد کن نبود. حتی زنی گاف یا یک زن ریشوی سیرک های یونانی هم نبود. او در اصل مدیر مدرسه تعلیم آواز بود و هنر پرخوریش هم از زمانی در سرش منده بود که میخواست نحوه اصلی غذا خوردن را به بچه هایش یاد بدهد و اشتهای آنها را از راه صحیح تحریک کند با استفاده از محرک های اشتها تئوری او که در عمل هم آن را به اجرا می گذاشت بر این اصل استوار بود که شخصی که از هر لحاظ سالم است و روحیه خوبی دارد می تواند تا قبل از آنکه خستگی بر او غلبه کند غذا بخورد حالا هم بنا به دلایل اخلاقی بود که مدرسه و خانهاش را ترک کرده بود تا با مردی مسابقه پرخوری بدهد که آوازه شهرت پرخوری غیر اصولی او در سراسر مملکت پیچیده بود. از همان لحظه نخست که آرلیان و سگنده را دید بلافاصله فهمید که این مرد نه تنها در مسابقه بازنده خواهد شد بلکه اعتبار شخصیش را هم از دست خواهد داد. در پایان شب نخست، و در حالی که مادفیل با قدرت تمام به پرخوریش ادامه میداد، آرلیان و سگوندو انرژی خود را با پرچانگی و خندیدنها به هدر داده بود. آن دو به مدت چهار ساعت خوابیدند و استراحت کردند و پس از بیدار شدن، هر کدامشان آب چهل عدد پرتقال را به همراه هشت لیتر قهوه و سی عدد تخم مرغ خام سرکشیدند. در صبح دومین دو روز و بعد از ساعت بیخوابی گوشت دو خوک را با مقدار زیادی موز و چهار کارتون شامپاین خوردند. مادفیل به خود گفت که نکند آریان سگوندو به طور مخفیانه به اصول پرخوریش دست یافته و فکر کرد با این حساب او خطرناکتر از آن است که فکر میکرده. وقتی پترکتست دو بغلمون سرخ شده درسته را روی میز گذاشت آرلیان و سگندو دیگر نای جنبیدن نداشت مادفیل با دیدن او در این وز گفت اگه نمیتونی لازم نیست بخوری میتونیم با توافق هم مسابقه رو مساوی علام کنیم او این حرف را از سمیم قلب گفت چرا که فکر میکرد اگر آرلیان و سگندو را به کشتن بدهد خونش به گردن او میافتد و دیگر حتی نمیتواند لغمهی به دهان بگذارد اما آرلیانو سگندو حرف او را بد تعبیر کرد و آن را کلک دیگری تلقی کرد. به همین دلیل با خوردن گوشت بوغلمون بریان شده معده خود را بیش از حد و ظرفیتش پر کرد. طولی نکشید که از هوش رفت و در حالی که مانند سگ کف به دهان آورده بود با صورت روی بشخاب پر از استخوان افتاد و شروع به نالیدن کرد. در میانی سیاهی، احساس کرد که از بالای برج بلندی به درون درقه عمیقی پرتش می‌کنند که در انتهای آن مرگ به انتظارش نشسته. بنابراین تنها توانست این را بگوید: من ببرید پیش فرناندا دوستانش با این خیال که او به فرناندا قول داده که در خانه معشوقش نمیرد و برای اینکه به این آرزوی او عمل کرده باشند هیکل فربه او را به خانهاش منتقل کردند پتراکوتس آن یک جفت چکمه را که او وسیعت کرده بود موقع مرگش توی تابوتش بگذارند تمیز کرد تا اگر کسی آمد آنها را به او بدهد. ساعتی بعد کسی آمد و به او خبر داد که آرولیان و سگندو از خطر مرگ نجات پیدا کرده. در کمتر از یک هفته حالش کاملا خوب شد. توری دو هفته بعد سلامتیش را با یک مهمانی بی جشن گرفت. کماکان به زندگیش در کنار پترکوتس ادامه میداد، اما هر روز به فرناندا سر میزد و حتی گاهی برای نهار میماند و کنار اعضای خانواده اش غذا میخورد. خورد انگار که دست سرنوشت او را شوهر فرناندا و آشق پترکوتس قرار داده بود فرناندا کم کم نفس راحتی میکشید. در طول مدتی که شوهرش به شکل اهانتآمیز او را ترک کرده بود تنها سرگرمی های او که تلخ خامیش را هم از بین می بردند یکی یادگیری نواختن کلاوسن در ساعات خواب بعد از ظهر بود و دیگری نامه بود که از فرزندانش دریافت می کرد در نامه های مفصلی که هر دو هفته یک بار برای آنها می فرستاد، حتی اشارهای هم به آن رویدادها و با مخفی نگه داشتن مشکلات خود سعی می کر روحی آنها را خراب نکند با وجود آن همه فشار روحی خودش را با گلهای بگونیا و صدای فستیوال کارنوالی که گاهی از خیابان روبرو به گوش میرسید رسید، گل خوش می و خود را در خانه بزرگ اربابی پدر و مادرش می پنداشت. فرناندا در میان سه مرده متحرک به سر میبرد گاهی روح خوز ارکادی و در فضای نیمه اتاق پذیرایی حاضر می‌شد، او، آن موقع مشغول تمرین کلافسن بود مینش نشست و با دقت به آهنگ ها گوش می‌داد. سرهنگ آوریان و هم مانند روحی سرگردان در خانه می گشت. از آن زمان که به دیدن سرهنگ جرینلد و مارکز رفت تا او را برای جنگ ترغیب کند دیگر از خانه پا بیرون نگذاشت و همیشه در کارگاه کوچک زرگریش به سر فقط گاهی بیرون می‌آمد. وزیر درخت بلوط میشاشید. هیچ ملاقات کننده‌ای را نمی‌پذیرفت مگر آرایشگرش را که هر سفته یک بار برای اصلاح پیش او می‌آمد. هر نوع غذایی را که ارسلا برایش میبرد می‌خورد و با همان علاقه و دقت سابقش به ساختن ماهی‌های کوچک طلایی ادامه می‌داد تا اینکه پی برد مردم آن ماهی‌ها را نه به عنوان جواهر بلکه به عنوان اثری باستانی می‌خرند. بنابراین از ساختن آنها دست کشید روزی عروسک های متعلق به رمدیوس را که از زمان ازدواجشان تا کنون زینت بخش اتاق خوابش بود جمع کرد و در حیات خانه آتش زد رسلا هم که همیشه دورادور مراقب رفتار او بود نخواست جلویش را بگیرد و گفت قلبه تو از تنگ ساخته شده او در جواب مادرش گفت مسئله سنگدلی نیست اتاق پر از بیت شده آمارانتا همچنان به دوختن کفنش ادامه میداد داد فرناندا چرا گاهی به دخترش ممه نامه می نویسد و برای سوقاتی میفرستد ولی برعکس حتی دلش نمیخواست خبری از پسرش خوزارکادیو چهار روم بشنود آمارانتا در برابر سؤال ارسلا که چرا پیش از موعد مقرر، در فکر تدارک که است جواب داد بدون اینکه با خبر بشیم می این جواب او معمایی را در قلب و روح فرناندا کاشت که قادر به آن نبود اما مانند مردها چهارشانه بود و همواره تمیز و مرتب لباس می پوشید. چنان روحیه ای داشت که انگار در مقابل گذر عمر و پیری مقاومت می کند. به نظر می رسید او هم نشان صلیب خاکستری باکر بودن را بر پیشانیش دارد در صورتی که در عالم واقعیت آن نشان را بر روی دست اش داشت دستی که باند سیاه رنگ آن را حتی شبها هم باز نمی کرد و هر وقت که کسیف می شد آن را می شست و دوباره می بست او این اواخر عمرش را صرف دوختن کفن خود می کرد طوری که روزها می دوخت و شب که میشد شد، آنچرا که در طی روز دوخته بود می نه به این خاطر که تنهاییش را شکست بدهد، بلکه کاملا برعکس. او آن را به دین کش می داد و طولانی ترش می کرد. بزرگترین نگرانی فرناندا آمدن دخترش ممه بود. او برای سپری کردن اولین تعطیلاتش آتش به خانه می آمد. فرناندا از این می ترسید که او متوجه غیبت پدرش آرلیان و سگندو بشود اما سرزدنهای دوباره او این مسئله را رفع کرد و با هم قرار گذاشتند طوری رفتار کنند که دخترشان فکر کند او هنوز هم مرد خانه و زندگی خودش است و نگذارند او به فضای غم و اندوه حاکم بر خانه پی ببرد به این ترتیب او دو ماه در سال را که فصل تعطیلات دخترشان بود مانند سابق نقش شوهر نمونه و وفادار را بازی می کرد، مهمانی راه میانداخت و از مهمانها با بستنی و شیرینی پذیرایی می کرد. ممه زیبا هم مجلس را با نواختن کلافسن غنی تر می کرد. به وضوح مشخص بود که او هیچ کدام از خصوصیات مادرش را به ارث نبرده و بیشتر به عمه بزرگش آمارانتا شباهت دارد. آمارانتا از دوازده تا چهارده سالگیش با شادابی و رقصیدنش به خانه روح نشات می همان زمانهایی که هنوز آشق پیترو کرسپی نشده بود و قلب و روحش مقشوش نگشته بود. ممه برخلاف آمارانتا و در اصل برخلاف همه آنها هنوز نشانه های انزوا طلبی خانوادش را بروز نداده بود. به نظر می رسید با همه چیز جهان سر سازگاری دارد. حتی زمانی که با وقت شناسی دقیق ساعت دوی بعد از ظهر در اتاق پذیرایی را به روی خود میبست و مشغول تمرین کلافسن میشد معلوم بود که او از خانهشان خوشش میآید. سراسر سال را در رؤیای روزهای تعطیلات میگذراند که با آمادنش جوانهای دیگر هم در جشنانها شرکت میکردند ممه از مهمان نوازی و دست و دلبازی پدرش خیلی راضی بود اما بعد بیاری موروسی خانوادگیشان در سومین تعطیلاتش بروز کرد. او بدون هماهنگی قبلی با خانوادهش چهار راهبه و 68 هم کلاسی خود را سرزده زده همراه خود آورد. آنها قرار بود یک هفته مهمان او باشند. فرناندو با دیدن این وضع با عصبانیت او داد کشید و گفت این بچه هم درست به اندازه پدرش وحشی و بیفکره بنابراین ناگزیر شدند از همسایه رختخواب و گهواره سفری امانت بگیرند غذا را در نه نوبت روی میز بچینند برای حمام کردن نوبت تعین کنند و چهل عدد چهار پایه کنند تا دختران آبی پوش با دکمه های مردانه سراسر روز را برای جا پیدا کردن سر میز غذاخوری این طرف و این طرف ندوند این مهمانی باعث ناراحتی همه شد چرا که هم کلاسی های پر سر و صدای او هنوز خوردن صبحانه را تمام نکرده بودند به فکر جا گرفتن برای نهار میافتادند و هنوز نهار را تمام نکرده به فکر شام بودند به همین دلیل در طول یک هفته تنها یک بار توانستند از خانه خارج شوند و مزاره موز را ببینند شبها راهبه ها آنقدر خسته میشدند که نای جنبیدن نداشتند و دیگر قادر به امر و کردن نبودند اما دختران که پر انرژی تر بودند از شعر و سرودخانه خارج از نطشان در حیات خانه دست بر نمی داشتند. روزی ارسلا سعی کرد خودی نشان بدهد و هرچه از دستش برمیآید در راه خدمت و مهمان نوازی برای آنها انجام دهد بنابراین در جایی قرار گرفت که معمولا در آن جا می ایستاد و از غذا درست سر راه حرکت آنها بود و به او تنه زدند و کم مانده بود به زمین بیفتد. روز دیگر هم هر چهار راهبه وقتی دیدند که سرهنگ آرلیان و بدون بدون اعتناب اطراف زیر درخت بلوط می وحشت زده و ناراحت شدند چرا که همه دختران در آن نزدیکی بودند و او را تماشا می کردند. روزی هم وقتی که امرانتا در آشپزخانه مشغول پختن سوپ برای ناهار بود یکی از راهبه ها سرزده آمد و درست موقعی وارد آشپزخانه شد که او داشت نمک در قابلمه سوپ می ریخت. از آمارانتا پرسید اون پودر سفید که توی غذا ریختی چی بود؟ آمارانتا که سبراش لپریز شده بود جواب داد سم آرسنیک در اولین شبی که آن مهمانان پر سر صدا و پر جمب و جوش آمده بودند، برای رفتن به دستشویی و قبل از خوابیدن در صفی ایستاده بودند و این کارشان آنقدر طول کشید که ساعت یک بعد از نیمه شب هنوز آخرین نفرات در صف بودند و نوبتشون نشده بود. همین موضوع باعث شد تا فرناندا هفتاد و دو لگن بخرد اما با این کارش فقط مسئله شب را به روز منتقل کرده بود، چرا که دخترها مجبور شدند از صبح زود در صف بیستند تا بتوانند لگن خود را در دستجویی خالی کنند و آن را بشویند هرچند بعضی از آنها گرفتار تب شدند و چند نفرشان را پشه گزید اما در مجموع در مقابل پیشامت ها و گرفتاری ها مقاومت می کردند و حتی در گرمترین ساعات روز هم در حیات خانه گشت و گذار می کردند. مهمانی که به سر آمد و آنها از خانه بو ها رفتند تمام بوته های گل در حیات خانه لگت کوب شده پایه های میز و صندلی ها شکسته شده و روی دیوارها ها خط خطی شده بود فرناندا با رفتن آنها نفس راحتی کشید و خرابکاری هایشان را نادیده گرفت رخت خواب ها و چهار ها را به همسایه ها پس داد و هفتاد و دو لگن خریداری شده را در اتاق ملکیادس گذاشت همان اتاقی که در زمانهای قدیم زندگی روحانی خانه بر مهوران می شرخید اما حالا انبار لگن بود و از نظر سرهنگ آوریانو و هم مناسب نام برای آنجا همین بود گرچه از نظر بقیه اعضای خانواده آن اتاق مسون از هر گونه گرد و خاک و ویرانی بود؟ اما او دید که آنجا به زبالدانی تبدیل شده. در هر حال او اهمیتی نمیداد که حق با کیست یا چه کسی درست می گوید و چه کسی اشتباه می کند اگر هم مطلبی راجب سرنوشت آن اتاق دستگیرش شد به این خاطر بود که فرناندو یک روز بعد از ظهر مرتب از جلوی کارگاه او عبور میکرد و لگنها را از اتاق بیرون میآورد و دور میانداخت. او با های مدام خود حواس سرهنگ آرلیان و بونیا را مختل کرده بود. روزی خوزر کادیو سگوندو به خانه آمد و حين عبور از ایوان به هیچ کس سلام نکرد. یک راست به طرف کارگاه سرهنگ آرلیان و بونیا رفت و پس از ورود در را پشت سر خود بست تا با عموی بزرگش حرف بزند. اورسولا گرچه نتوانست او را به چشم خود ببیند اما از صدای پوتین های ویژه سرکارگریش او را شناخت و از که میان خود با بقیه اعضای خانواده و حتی با برادر دوقلویش به وجود آورده بود متعجب شد. همان برادر دوقلویی که در دوران بچگی با عوض کردن لباسهاشان با هم اطرافیان را سردرگم می کردند. دیگر هیچ گونه وچه اشتراکی بین این دو نمی دید. خوژ ارکادیو لاغرتر و باوقارتر و متفکرتر نشان میداد و مانند عربهای دوران جنگهای صلیبی غمگین بود و رنگ صورتش هم رنگ پاییز زرد شده بود تنها کسی بود که از نظر خصوصیات اخلاقی به مادرش سانتا سوفیا دلاپی داد شباهت داشت هر وقت صحبت از خانواده پیش می‌آمد اورسولو از اینکه او را از قلم میانداخت خودش را سرزنش میکرد. اما حالا که حضور دوباره او را در خانه حس کرد فهمید که سرهنگ آرلیان و او را به کارگاهش و آن هم درست وسط ساعت کاریش راه داده. یک بار دیگر خاطرات قدیمی را مرور کرد و به این نتیجه قطعی رسید که او در بازیهای دوران کودکیشان جای خود را با برادر دوقلویش عوض کرده و همانطور باقی مانده. یعنی در اصل اوست که آرلیان سگندو نام دارد کسی از جزئیات زندگی او خبر نداشت تنها می که او جا و مکان ثابتی ندارد و خروسهای جنگی خودش را در خانه پیلارترن را پرورش می دهد و گاهی هم شبها در همون جا می خوابد اما اوقات خود را اغلب در خانه زنان فرانسوی می گذاراند. و این که به کسی تعلق خاطر داشته باشد ولگردی میکند و هیچ گونه جاه طلبی ندارد و مانند ستاری رها شده در منظومه شمسی اورسولا سرگردان است. در واقع خوزارکادیو سگوندو عضو از خانواده به حساب نمی آمد و در آینده هم به احتمال صاحب خانواده نمی شد چون در گذشته های دور سرهنگ جرینلدو مارکز او را به پادگان برده بود اما نه برای تماشای تیرباران ادامی ها بلکه به این دلیل که او هرگز نگاه غمگین و تمسخرآمیز فرد اعدامی را فراموش نکند این برای او تنها یک خاطره قدیمی نبود بلکه یگانه خاطره ای بود که همیشه در ذهن خود داشت خاطره دیگرش مربوط به پیرمردی میشد که جلیقه قدیمی به تن و کلاهی بر سر که لبه آن شبیه بالهای کلاق بود آن پیرمرد برای او از چیزهای شگفتانگیزی حرف میزد و آن دو در اتاقی با پنجره پرنور نشسته بودند نمی توانست بگوید که این خاطرات مربوط به چه ای بود به این دلیل که خاطرهای نامعلوم بود آری از هر گونه عبرت یا حسرت آن خاطره درست عکس خاطره مرد تیر شده ای بود که مسیر آینده زندگی او را تعیین می کرد. خاطره که هرچه زمان میگذشت واضح تر میشد. انگار که گذر زمان او را به آن خاطره دور نزدیک تر می کرد. سعی کرد از وجود او بهره بگیرد و از طریق او سرهنگ آرلیان و بو را ترغیب کند تا از حبس کردن خود در کارگاهش دست بردارد. به او می گفت سکون بفرستیش سینما؟ درسته که از سینما خوشش نمیاد و لاغل یه کم هوا میخوره توری نکشید که فهمید خوز ارکادیو سگندو به اندازه سرهنگ آرلیان و با گوشش به حرفهای او بدهکار نیست و هر دویشان به یک اندازه نفوز ناپذیرند و هیچگونه گونه و التماسی در آنها کارگر نمیفتند هیچ کدام نفهمیدند که دو وقتی در کارگاه به گفتگو نشستند از چه چی چیزی حرف میزنند؟ اورسولا احتمال میداد آنها تنها نفراتی از اعضای خانواده هستند که به نوعی به خاطر وابستگی فامیلی به سوی هم جذب میشوند. واقعیت امر این بود که حتی خوزارکادیو سگوندو هم قادر نبود سرهنگ و بوندیارا را از تنگنایی که برای خودش به وجود آورده بود بیرون بکشد. حجوم دختر مدرسهی به خانه از حوصله او کم کرده بود. با وجود سوزاندن عروسک های با این بهانه که اتاق خوابش از بید پر شده گهواری سفریش را به کارگاهش برد و در گوشه آویزان کرد. شب و روز خود را در کارگاه سپری می کرد و فقط برای غذای حاجت بیرون می آمد. دیگر نمی توانست با او حتی چند کلمه حرف عادی هم بزند. می دانست به غذاهایی که برایش می برد لب هم نمی زند و آنها را به گوشه از روی میزه کارش حل می دهد تا به ساختن و تکمیل کردن ماهی های کوچک تلائی ادامه دهد برایش مهم نبود که سوپ سرد بشود یا روغن روی گوشت بماسد از زمانی که سرهنگ جلینلد مارکز درخواست او را برای آغاز جنگی تمام ایار رد کرد عبوزتر شده بود روز به روز بیشتر و بیشتر در خودش فرو می رفت و این موجب می شود تا اعضای خانواده او را مرده به حساب بیاورند از آن زمان به بعد هیچکس کس او را در حال دلمشغولی با تنوعات مربوط به انسانها ندید مگر در روز یازدهم ماه ماه آن سال که برای تماشای سیرک از خانه بیرون آمد از نظر او آن روز هم مانند روزهای دیگر سالهای گذشته بود. ساعت پنج صبح در اثر صدای وزقها و جیر آن سوی دیوار اتاقش بیدار شد و دید که باران آغاز شده روز شنبه هنوز بند نیامده. نیازی نبود که صدای برخورد قطرات باران را بر روی برکهای درختان حیات بشنود تا احساس سرما کند. سرما را تا عمق استخانهایش حس می کرد. مثل همیشه پتوی پشمی و زخیمش را به دور خود پیچید لباس نخی زبری تن داشت که به خاطر راحت بودنش آن را می پوشید و چون از مد افتاده بود آن را تنکه محافظ کاران می نامید. شلوار تنگی پایش کرد اما دکمه های جلوی آن را و همینطور دکمه طلایی یقه پیراهنش را که همیشه بسته نگه می داشت نبست چون خود را برای رفتن به حمام آماده می کرد. پتو را تا روی سرش بالا کشید و با انگشتان دستش سبیلهایش را تاب داد و بعد بیرون رفت تا خود را به زیر درخت بلوت برساند و بشاشد با وجود اینکه هنوز خیلی مانده بود تا آفتاب طلوع کند خوزارکادی و سگندو زیر سرپناهی از شاخه های نخل که در اثر باد و باران پوسیده بود در حال چرت زدن بود سرهنگ متوجه او نشد همانطور که هیچ وقت متوجه او نمیشد. در آن لحظه عبارت نامفهومی را که همیشه روح پدرش در گوش او می نشنید و در اثر پاشیده شدن ادرار داغ بر روی هایش از خواب پرید اما سرهنگ آرلیان بوئندیا او را در ورای شاخ و برک ها ندید تصمیم گرفت از رفتن به حمام خودداری کند آن هم نه به خاطر سرد شدن رطوبت هوا بلکه تنها به خاطر مه غمانگیز ماه اکتبر هنگام برگشتن به کارگاه متوجه بوی ای شد که عروسش سانتو سوفیا دل داد با آن زیر اجاق را روشن میکرد. بنابراین به دع آشپزخانه رفت و در آنجا به انتظار نشست تا آب جوش بیاید بعد فنجان خود را از قهوه بدون شکر پر کرد و به کارگاه برگشت. سانتا سفیا دلاپه داد طبق معمول هر روز از او پرسید که امروز چه روزی است؟ او هم جواب داد امروز سهشنبه یازدهم اکتبر است. بعد در روشنایی آتش اجاق زنی را دید که هرگز برای او وجود نداشت. ناگهان روز یازدهم ماه اکتبر دیگری را، درست در بحبوه جنگ به خاطر آورد آن روز موقع بیدار شدن از خواب با غریزه حیوانیش یقین حاصل کرده بود زنی که دیشب در کنار او خوابیده بود مرده و واقعا هم مرده بود به این دلیل آن تاریخ در ذهنش مانده بود چون آن زن چند ساعت پیش از مرگش تاریخ را از او پرسیده بود با وجود بیاد داشتن این خاطره خبر نداشت که تا چه میزان آن حس پیشگوییش از بین رفته است در حالی که قهوه بر روی اجاق دم می کشید فارغ از هر گونه حس کنجکاوی و به هیچ دلتنگی به زنی فکر می کرد که هرگز نه نامش را پرسیده بود و نه حتی صورتش را دیده بود او در تاریکی به درون گهواره سفریش خزیده بود در میان زنانی که به همان طریق فقط برای یک شب وارد زندگی او شده بودند یادش میآمد که او تنها زنی بود که آن شب در اشک‌های خود غرق بود و یک ساعت پیش از مرگش خود او را سوگند داد که تا لحظه مرگ دوستش داشته باشد در حالی که از فنجان قهوه او بخار بلند می‌شد به کارگاهش برمیگشت نه تنها آن زن را بلکه تمام زنان را از ذهن خود بیرون کرد بعد از ورود به کارگاه، چراغ را روشن کرد و فنجان قهوه را روی میز کارش گذاشت و شروع به شمردن ماهی های کوچک تلاییش کرد که توی یک قوطی حلوی ریخته بود. هفته عدد ماهی بود. تصمیم گرفته بود آنها را نفروشد. بنابراین شروع به ساختن دو ماهی در هر روز کرد تا تعداد آنها را به 25 و پنج عدد برساند. بعد آنها را زوب می کرد و دوباره شروع به ساختن میکرد تمام روز را در کارگاهش بدون اینکه به چیزی یا کسی فکر کند کار میکرد حدود ساعت ده به اینکه متوجه شدت باران شود ناگهان کسی از جلوی در کارگاه او دوان دوان رد شد و داد زد که درها را ببندید تا سیلاب وارد خانه نشود اما او حتی در فکر خودش هم نبود و کماکان به کار کردنش ادامه میداد. داد ارسولا نهارش را آورد و بعد از ورود به کارگاه چراغ روشنمانده را خاموش کرد و گفت عجب بارونی سرهنگ جواب داد اکتبر. و بی این که سرش را بلند کند به کارش ادامه داد در حال ساخت ترین بخش کار بود یعنی جاسازی قطعه کوچکی از یاقوت به جای چشم ماهی پس از تکمیل شدن کار ماهی را در قوطی حلبی انداخت سرش را بلند کرد و به خوردن سوپ مشغول شد و پس از آن گوشت بریان و پیاز داغ روی برنج را با موز سرخ شده مخلوط کرد و در همان بشخاب خورد اشتهای او در بدترین یا بهترین شرایط هیچ تغییری نمی کرد. پس از خوردن نهار طبق عادت همیشگی خوابش گرفت از خیلی وقتها پیش این خرافه را ملاک قرار داده بود که تا دو ساعت بعد از هضم غذا دست به هیچ کاری نزند و چیزی نخواند و حتی بازنی همخوابه نشود این ایده چنان در ذهن او رسوخ کرده بود که بارها در خط مقدم جبهه جنگ را متوقف کرده بود تا مبادا جان سربازانش را فدای سوه حازمه کند. روی گهواره سفریش دراز کشید و در حالی که ترشوهات مومی داخل گوشش را با قلم تراشی کوچک پاک می کرد در عرض چند دقیقه خوابش برد. در خواب دید که وارد ای با دیوارهای سفید می شود و از اینکه اولین انسانی است که وارد آنجا شده اوقاتش تلخ شد. در طول رؤیا به خاطر آورد که عین همین خواب را در شب پیش و شبهای بیشمار دیگر در سالهای گذشته دیده است و میدانست که بعد از بیدار شدن آن رؤیا از ذهنش پاک خواهد شد، چرا که آن رؤیا را تنها میشد در خواب به خاطر آورد. لحظه ای بعد در واقع زمانی که آرایشگرش در کارگاه را کوبید و اجازه ورود خواست سرهنگ آرلیان و با چشمانش را باز کرد و چون این خیال کرد که فقط برای چند ثانیه پیلک را به طور ناخواسته روی هم گذاشته فرصت این را نداشت که بخوابد و خواب چیزی را ببیند به آرایشگر گفت امروز نه بذاریم واسه روز جمعه سه روز بود که ریشش اصلاح نشده بود و سفیدی آن به چش می‌خورد اما چون میخواست روز جمعه موهای سرش را اصلاح کند تصمیم گرفت که هر دو را در یک روز انجام دهد عرقی که در حین چند دقیقه خواب بعد از ظهر بر تنش نشسته بود باعث شد سوزش زخم‌های زیر بغلش را به یاد بیاورد در طی این مدت آسمان تا حدودی از ابر خالی شد و باران بند آمده بود اما آفتاب هنوز پشت لکه های قرار داشت آروق بلندی زد طوری که مزه ترش سوپ به گلویش برگشت گویی جسمش به او دستور داد که پتویش را روی دوشش بیاندازد و به دستشویی برود همین کار را کرد ولی این بار بیش از حد لازم در دستشویی مانده بود حالا چیزی به او گفت که وقت برگشتن به کارگاه است و باید کارش را از سر بگیرد در مدتی که در دست بود یادش آمد که امروز سهشنبه است و خوز آرکادیو سگندو به این خاطر به کارگاهو نیامده چون در مزرعه موزکاری روز پرداخت دست موز این افکار مانند بقیه افکارش در طول چند سال گذشته بدون اینکه خودش متوجه شود او را به فکر جنگ هایش میانداخت. به خاطر آورد که سرهنگ جرینلدو مارکز زمانی به او قول داده بود که اسبی را با نشان ستاره سفید بر پیشانی به او هدیه دهد. اما دیگر راجب به این قولش حرفی نزده بود. بعد چیزهای مبهم دیگری به خاطرش اومد. یاد گرفته بود به خاطراتش فرصت جولان ندهد تا مبادا احساسات او را جریهدار کنند. سرهنگ آرولیان بوندیا. هنگام برگشتن به کارگاه چون متوجه صاف شدن هوا شد به خودش گفت که حالا بهترین زمان برای حمام کردن است اما فهمید که آمارانتا پیش از او به حمام رفته به کارگاهش برگشت و شروع به ساختن دومین ماهی کوچک طلایی آن روز کرد در حال نصب قلابی روی دومان بود که آفتاب از پشت ابرها بیرون آمد و با چنان درخششی شروع به نورافشانی کرد که چشمان سرهنگ خیره ماند هوا که در اثر سه روز بارندگی آری از هر گونه گرد و غبار شده بود ناگهان پر از مورچه بالدار شد احساس کرد که باید برود زیر درخت بلوت بشاشد اما چون کارش تمام نشده بود تصمیم گرفت ابتدا ساختن ماهی را تمام کند ساعت چهار و ده دقیقه بعد از ظهر از کارگاه خارج شد صدای نواخته شدن آلات برنجی موسیقی و تبل را تو با صدای هورای کودکان شنید. برای نخستین بار از زمان جوانیش متوجه شد که آگاهانه خود را گرفتار حس میهندوستی دوستی کرده. بار دیگر به یاد بعد از ظهر افتاد که پدرش دست او و برادر بزرگش را گرفت و با خود به سیرک کولی ها برد تا یخ را نشانشان بدهد. سانتو سوفیا دل در آشپزخانه مشغول بود که با شنیدن سر وصدا کارش را نیمه تمام رها کرد و سراسیمه به طرف حیات دوید و گفت سیرک اومده سخنگ آولیان بواندیا به جای اینکه خودش را به زیر درخت بلوط برساند به طرف در حیات رفت و قدم به پیادهرو گذاشت و قاطی مردمی شد که به تماشای سیرک ایستاده بودند زنی را دید که با لباس تلایی رنگ روی سر یک فیل نشسته است شطور غمگینی را در حال نشخار کردن دید خرسی را دید که در لباس دختران هندی و هم نوا با تابل زنها با قاشقی به پشت یک تابه میکوبد دلغک هایی را دید که در انتهای رژه معلق میزدند بعد از اینکه هنرمندان سیرک از مقابلش عبور کردند و دور شدند و مردم هم به تدریج متفرق شدند او خود را در خیابان خلوت و روشن از نور آفتاب تنها دید بار دیگر به یاد بدبختی ها و تنهایی خود افتاد هوا باز هم از مورچه های بالدار پر شد او چند نفر دیگر را دید که مانند خودش در لبه پرتگاه تردیدها ها و به پوچی خیره شدند به خانه برگشت و در حالی که هنوز در فکر بود خود را به زیر درخت بلوت رساند و در حالی که می شاشید به سیرک فکر کرد اما دیگر خاطری برایش باقی نمانده بود سرش را مانند جوجهای میان دوشانه خود فرو برد و پیشانیش را به تنه درخت بلوت چسباند و همانطور بی حرکت بر جای ماند اعضای خانوادش از او دور بودند و او را تا ساعت یازده فردا ندیدند صبح فردا وقتی سانتا صوفی دلپیداد برای خالی کردن سطل آشغال به حیات آمد چشمش به لاشخورهایی افتاد که آرام میچرخیدند و به سمت زمین فرود می آمدند <تصفيق>